فیلم مرد عوضی نویسنده فرهاد توحیدی بازیگران عرزی پرستویی. دیوی های من میگو فهم توی میگفته خیالات میکنی. فاطمه موتامدداریا. من با رئیس رایسی شرکت صحبت کنم میشه؟ افسانه بایگان. خودت با ناراحت نکن از پیش میاد. من اصلا نگران نشدم. زنده یاد رضا جیان. بساده نه کار با پشینان گناهکار ما در پاکنیت روز در محمود پاک نیات. روزگاری که شوهرت بستری بودن گردد بیاد دیگه که اگه من نبودم چه تفاوتی افتاد؟ موسیقی محمد رضا علی غلی. کارگردان محمد رزا هنرمند لبه حوز گذاشته شده ملافه ها روی بند پهن شده مردی میان سال با موهای تقریبا بلند و ریش نسبتا بلند توی زیرزمین خونه کارخونه کوچیکی درست کرده و مشغول کار مرد روپوش سفید پوشیده کتابی رو بر داره و ورق میزنه چیزی متوجه شده به طرفش میره مایات در حال قلقل سیمای دوره مخزن رو باز میکنه مخزن رو و میذاره زمین. بخاری از محفظه مخزن خارج میشه. شیر آب آبو باز میکنه و از همون محفظه آب وارد مخزن میشه. ای در حال چرخشونه. خوبه همه چیز درست داره پیش میره. پای کامپیوتر میره میشینه. دکمه رو میزنه و چیزی رو در مانیتور مشاهده میکنه. نکته رو کف دستش یادداشت میکنه. بلند میشه و پیچی رو روی یک دستگاه کنترل میپیچونه به محض شنیدن صدا به سمت دیگه دستگاه میره و دست میزنه اوه لحظه میسوزه و پیچ کنترلی رو باز میکنه به سراغ کتاب دیگه میره میخواد چیزی بخونه که متوجه شده کارش با موفقیت انجام شده دستش رو به هم میکوبه با خوشحالی حرکاتی رو دور دستگاهش انجام میده خیلی خوشحاله در هنگام حرکت به مایات در حال جوش و استوانه در حال چرخش نگاه میکنه پمپ هم درست کار میکنه تا اینکه میرسه به لولهی که از اون پودر به بیرون میریزه خوشحال دستش رو زیر اون میگیره صداهایی رو در ذهنش میشنبه و باز هم دور دستگاه میچرخه صدای ما رو از واشنگتان میشنبه امروز برای اولین بار یک دانشمند به موفق به دریافت جایزه نوبل در رشته شیم صدای همسرش اونو به خودش میگه باش رو حواست کجاست نوبل حاضره چی؟ میگم ناهار حاضره تازه از رویا در میاد موفق شدم شیری پودرو نشونه همسرش میده. باور نمی کنی چرا؟ چرایش <تصفيق> بعد یک سال کار اینو درست کردی برمی چی؟ اینه که تو سوپره سر کوچمونم همونم میفروشم بسید سرد تمام سر اون پیشمنده داره پیشمنده بده پیشمنده شیرین که با پیشبند و کفگیر از آشپزخانه بیرون اومده پیشبند باز می‌کنه و به خسرو میگیرم خسرو پیشبند رو میگیره پشت گردنش رو میخارونه و به سمت دستگاه میره پیشبند تمیز رو روی یک مغزن کثیف میکشه پیشبند دود گرفت و دو سیاه شده این آب همین آبه, همی آبه دوری کشی نگاه کن. خسرو پیشبند رو توی تشتی که آب داره میگذی به دو میره و یه کف دست پودر میاره و توی آب تشت میریزه و پاش میشینه پودر توی آب حسابی کف کرده سیاهی دودی روی پیشبند کمتر میشه کمتر کمتر تا اینکه از بین میره ده چرا اسم روزیو با پود جادویی که در هیچ کجای دنیا پیدا نمیشه شیرین با تعجب نگاه میکنه حالا بازم میگه همه جا میفوشنش نهار یخ کرد این خوراه حتما تاریخی میشه ممکنه موزش موزاش بازم کرفتی تو رویا نوبل شیمیلی بگیر و این همه کار باید بشنم یه راتخم رو در دریابت نوبل بنویسم واسه میدونی اجازه نقدیش چند هزار دلاره یه نگاهی به دوربر خودت بکن این رو نگاه کن ک بابا یکی تو این خونه ای پدری باقی نمونده فقط ماموندی ما, ما همین تا تابلو یه ها کج میشه تو بطتی بهنابر شیمی داره من رو بده نمیخوام خسرو یه درآمد مختصر ماهیانم برای من کپایت میکنه من دیگه نمیتونم جاره تو رو بکشم آخه چرا نمی پرمییت دیگه نمیتونم درآمد مختصر ماهانه که چیزی نیست من یه گنج فراهم کردم گنجی که میتونه همه اون باش آسوده زندگی تو میدونی پودر جادویی یعنی چی؟ یعنی شستن لباس بدون چند زدن؟ یعنی ماشین لباس ماشین لباس هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی بعد از این یا با پول کار بر خونه یا با نمیگردد. با آسیب داده صوت شیرین بادی تولید میشه و خسرو با صندلی عقب آغاب میره و میافته توی گنج خونه شیک که ماشین مدل بالا جلوش پاک شده. مردی با کولوات کاغذ به دست همزمان با دو تلفن صحبت میکنه و نوکرش براش قهوه آورده اساسی خونه خیلی خیلی گرق این بود نا نباتو نبودن چی یوزان با تلفن دیگه الان خبرشو من میدی؟ نکنه می‌خاستی هم کنیم. کی گفت تو قهوه شیر بریزی گفتم بلک بله برو برو. همین که چند روز دادم نیست همه چی دیگه میشه الو آروم باشم چطوری؟ حیات مدیدن خبر کن ظرف یک ساعت همه بر اونجا جمع باشم همه فهمیدی؟ گوشی الو طور که ساکت باش بادکاری ندارم. الو گوشی ظرف یک ساعت من همین الان حرکت میکنم یه تلفن رو قطع میکن و کتش رو بر میداره. اوکی بای داری میدی؟ میمینه که میگیری، بیزنس پاداشش. چرا یه مزاحمت نمیکنه؟ چه میگو؟ تلفن رو قطع میکنه و از پشت سر. پرت میکنه برای نوکارش. نوکر میگیره. دلم براد تایید شد. ساعت بود ما سفر سخنرانی هستیم. باز سر دیگه. همه شریفان هم. دوبار بر چند میلیارد توی خونه آوردن. مرد کیفش رو میگر و رامی افتاد. از در ساختمون خارج میشه و پای ماشینش میاد. درو باز میکنه. راننده که خوابیده بود بیا خوابی؟ اشک. گفتم؟ تو خودش پشت رول میشینه و راننده هاجواج میمونه. ماشین بیده و راننده ناراحت. من تمام فرمولایی که تو این چند روز چند با پودرش به شرکتی اومده و برای مردی که کت و شلوار پوشیده توضیح داده. در واقع ترکیب تازه شیمیایی برای تولید یک جور پودر لباسشویی که من اسمشو رو شما گذاشتم پودر جادویی یا تک، چون واقعا تکه. حاضرام به اینو بهتون ثابت بکنم. آقای معترم چند دفعه بگم اولندش من یه کارگرم دربونم این چیزایی هم که شما میگی من سر در نمیارم دو بومنیش این کارخونه خودش پود میسازه اعتیاجی به پود شما نداره و من ماشینه داریوشو دم در میبینم آقای مدیر عامل اومدن افسرنگه روسی گیر از پشت میز بلند میشه و میدوی دم در به استقبال آقای مدیر داریوش آقای مدیر بی اعتنا به دربان و خسرو وارد میشه و یک راست میره دم اساس دربان جلو میاد و در آسانسور رو برای مدیر باز میکنه داریوش داخل میشه در داریوش دکمر رو میزنه و آسانسور بالا میره دربان بر میگرد و خسرو رو نمیبینه نیست؟ یه نگاه به اطراف میکنه؟ نیست به سمت در میره تا یه نگاهی بکنه که خسرو با وسایلش از زیر میز دربان بیرون میاد و پاورچین پاورچین سمت آسانسور میره درش رو باز میکنه دربان یه متوجه میشه خسرو دستکون میده و خسرو توی حفره آسانسور سقوط دربان با اجل میاد در رو باز میکنه و متوجه فاجعه میشه منشی داریوش پشت میز نشسته و آرایش میکنه که به محض ورود داریوش و مرادی مدیر مالی شرکت پا میشه و میسته. منشی هول شده و یه خط قرمز پایینه لبش بیمیکشه. رسیدن به صدقه ایجا. این گزارش چرا امروز باید به دست من برسه؟ من از مدیر بازارگانی شرکت خواسته بودم گزارش قبل سفرتون حاضر کنن. ولی این گزارش دیروز به دادن. توت است؟ معلومی که است؟ همین الان حکم برقراری مدیر بازرگانی رو با منو با هم بزنید بزنید چشم. داریوش مرادی وارد اتاق بشه من که الان نمیتونم اینو بخونم خیلی خلاصه با مختصر بگو اعظمون چیه در آستانه ورشکستگی هیچ نمیفهمم کاهش تولید تا یک چهارم ظرفیت فشار بازار برای توزیع سری موجودی رقابت شرکت های دیگه قربان تولید تا یک چهارم ظرفیت نتونستیم مواد اولیه لازم رو کنیم یعنی ارز نداریم قربان وای منجی با همون مانتوی خردلی و روسری رنگی و آرایش خودم با ظرفیت جلسه وزه میتون شدم کارگرا بیرون بی‌تربیته دارن شعار میدن شما بفرمایید منجی موقع خروجم در میزنه داریوش با تعجب بهش نگاه میکنه منجی لبخند به لب میذاره دارن شعار میدن بله میسن که دیگه چی خیاگرن چه فرانسه که از در پر سر اعتراض میکنن صدای شعار ها رو از پنجره شنیده شعار و بب... داریوش میکروفونی رو برمیداره این برد همه ساکت گوش امز کنید من, من, من هیچ حرفی ندارم تالام نشینم که چی گفتی بتون ارفاق می کنم. از حالا به همهتون یک دقیقه فرصت بیارم. ظرف این یک دقیقه هرچی رفت سر هر کارش که رفت چی نرفت به جون اون کسی که دوست دارم همهتون بلا فاصله کارگزینی اخراج یه دقیقه از همه درام شروع میشه. یک دو سه شروع یه چشمش به ساعته یه چشمش به کارگران کارگران همه ایستدن به هم نگاه میکنن و به مدیرشون که از بالا به اونان نگاه میکنن داروش ساعت رو دم گوششون بگیر به کارگران نگاه. مردشون رو همه تونه ببرن همه ساکته هم و جمع نخوردن داریوش عصبی پشت میزش میره میشینه مستعصبی همه از دم اخراج همین امروز و بلا استثنا قانون نمیتونه نمیتونیم این کارو بکنیم قربان بهتره مطرحش نکن پس چجوری میشه کار کرد با این قانونای دستپاگیر بلی چیزی وارد اتاق میشه صورتشو تمیز کرده داریوش میگه این ماجراها قربان این خبران نباید از این اتاق بیرون بره مخصوصا تحت هیچ شرایطی بوف نباید از را مطلع بشه حواسون باشه خونچی میکنه و بیرون میره. آمبولانس درب و داغونی با یک در یه وری دم شرکت اومده. دو مامور اورژانس با لباسهای خونی برانکاری رو بیرون میاره. خسرو بیهوش روی زمین افتاده. ممورین نیروی انتظامی هم بالای سرشن. مردم هم هستن. مامورین اورژانس خسرو رو بلند میکنن. روی زمین به جای جسد با گچ آدمک مزحکی کشیده شده که چشم چشم دو ابرو داره. اتاق رئیس اعضای هی مدیره همه نشستن همه اینه دودی زدن کیفاشونو ایستاده روی میز گذاشتن و آسیبی با انگوش روی کیف میزنن. می رو آقا یونه محترم موترمیت مدیره جلسه رسمیه به فرم میکاهش میکنن. رو روده لوا وسیکاستگی یا تو مدیر خبری کدوم؟ هست. آقا یونه افتضاع. از اجازه مدیر. آقا اجتازه. آقا اجتازه. آقا اجتازه. حقلی بی ادبی کاش من سه ماه دارم آقا من خواهش میکنه منشی وارد اتاق میشه سر و صدا ناراحتش کرده گوشاشو میگیره و همه ساکت میشن و منشی هم دست از گوشش بر میداره داره شما کار دارن مگر نمیبینی که خون مهمه وکیل شرکت میگه از بورس زن میزن از بورس؟ از بورس؟ مدیره همه بلند میشن اعضا همه ها رو برداشته کیفاشون رو رها میکنن و بیرون بیرن سراغ تلفن آقای جم رو میگیره و صحبت میکنه و همه جمع میشن که بوش بده چه تمام شرکت مثل جد داره سقوط سقوط؟ از همزار ست تومن رسیده در هر سرصد پنجات ت همه دارم می درصد درصد یه لو سر داریوش جم مدیر عامل شرکت گیج میره حالا دیگه تاب میخوره سفیدی چشمش دیده میشه چند کره زمین دور سرش میچرخه میچرخه میچرخه اعضای هیئت مدیره نگران شدند. داریوش توادلش رو از دست میده و توی بقل یکی از اعضای موسیل رفته دوشای اون مرد میگیره و پی بالا و پایین میشه بقیه نگرانن مرد موسیل اونو از خودش جدا میکنه توی بغل بقلیش میافته کت اون پاره میشه حالش اصلا خوب نیست و بیهوش روی زمین میافته آمولاز کانه به محبته بیمارسی رسیده راننده پیاده میشه اون در یه وری کنده میشه در دیگر رو باز میکنه به کمک همکارش برانکار خسرو رو در میاره راننده اینقدر عجله داره و دستو پاچول افتیه که همینطور را میافته همکارش جا میمونه و برانکار روی زمین کشیده میشه و جرقه میزنه با همون وز برانکار رو توی اورژانس میبره و وی میکنه وزنه آقای جمع رو با اون موهای لختش روی برانکار شیکی توی یک آمبولانس تر و تمیز می‌ذاره اعضای هیئت مدیره موبایل به دست همه میدونن سمت ماشیناشون آمبولانس شیک دم بیمارستان میرسه و توقف میکنه بقیه اعضای هیئت مدیره هم یکی یکی با ماشیناشون که همه شبیه همند میرسن و توقف میکنن همه ام هم راننده دارن اولین نفر مرادی پیاده میشه با موبایل صحبت میکنه بقیه هم موبایل به دست پیاده میشن و پای آمبولانس میان وضعیت خوبی نداریم انترانه های توجه بفرمایید دنده های تحتانی دو طرف این بابا رو که میبینید شکسته و حدود دو دونگه بافت افتریه رو تخریب کرده بقیه دیگه من نمیتونم تحمل بیاره دانوبرین آدرمونالین تزریق میکنیم از دم در بیمارستان تا دم آمبولانس برای برانکار آقای جم فرش قرمز باریک پر می‌کرد. همسر آقای جم از ماشین پیاده میشه و وارد بیمارستان میشه. مریض دیگه رو روی برانکار وارد بیمارستان میکنه آی دکتر بیکس تلفن. یهو جون تلفن. خیلی متشکرم آقای دکتر. به شمال مچ پام مچ دستگاه رو به داروش واسه می‌کنه دستگاه را میافته آقای رایک باشی بوردن با چیزی رو چک می‌کنه اول این خط نوار مغز خط نوار مغز داروش روی دستگاه امنات دولار نشون می‌ده ضربان قلب خیلی ضعیفه تنفس گوشیتنفس خیلی ضعیفه احتمال سکته مغزی قد EG بوش. آرمی سی این این به حالا فوتبار رئیس نگاهی به دکتر میکنی سی این این و پایان فیلم The End تمومه دکتر مرگ مغزی باید زنده بشه فایده نداره دکتر مغزم خودتون دیدید که میدونی اون بیرون چه خبره میدونی از کجا زنگ زدن من نمیتونم از دست من کاری ساخته نیست من نمیتونم دکتر اگه شما نمیتونی پس کی میتونه پورفسور سائی پورفسور سائی بزرگترین جراح و متخصص مغز و اعصاب تلفنشو بگیر خدا. آدمی عجیب که سر و وصل وصلپینه ای داره و یه گوشش بزرگ و تکی موی سفید داره سرک میکشه پشت اتاق عمل دکتر سائی و تو تلفنه استرالیه دکتر برمی‌گره و نگاه می‌کنه میگه کار ماجه می داره میگه خدا رو... به دکتر سائی سمت در مییره و معلوم میشه که خودش و تیمش بالای سر یه موش هستن و با با موش بازی میکنه موش بیچاره رو به شکل قربانی وحشی میبینه توی اورژانس بالای سر داریوش دکتر سائی عکس مغز داریوشو میبینه رئیس بیمارستان دکتر خسرو آدم عجیب دارستان. و دو فرسار هستن خواهش میکنم پروفسور جان همین میدون که که کار کاری شما دکتر سایی میره و موجود عجیب پشت سرمش دکتر سایی موقع خروج چشمش به خسرو میفته که بیجون یه گوشه روی تخت رفت رفت کارش تمومه ما باید برش کردونیم دکتر آدم مهمیه باید سرش میره و دستی به سرش میکشه سی پی آر رو شروع کن دکتر باید بارم دکتر سری تذبیر کنیم دوتور نگاهی به عکس‌های خسرو می‌کنه که روی تابلوینه. بعدنگاش فوراً دوباره دوچرخ بعدنگاش فکر می‌کنه می‌خواد بره که یونس شما چیزی می‌خواید بگین پروفسور؟ بله شاید ولی بله خصوصی. لطفاً هم همه اتاق رو ترک می‌کنن به جز یونس همون آدم عجیب. میخویم مقصد حفظ بشه اون آره من چه اهمیتی داره پروفسور اینجا تو بیکار بنداست قله رو میگه ما یه مغز زنده داریم یه بدن زنده از مضمونام میتونیم یه آدم زنده کامل داشته باشیم که به تعبیری هر دور اینا مردهن تمام پیوند مقصد مگه ممکنه پروفسور؟ امتحانش که میارسه من قبلن مغز هزاران گورباغه رو با هم عوض کردم. مال اینو گذاشتم تو مال اون، مال اونو گذاشتم تو مال این. همشون هم شادوشن بودن. اینو ببینید. همه چیزش پیوندیه. همه چیزش. حتی بچه‌ها بهش میگن وفقه پینه. 99 درصد از اعضای بدنش مال خودش نیست بیچاره. من چیکار باید بکنم پروفسور؟ هر دوشونو فوراً میپرسید به مرکز تحقیقات و تعویزات من خیلی فوری. و در این قضیه بین خود اون باقی میمونه چون خیلی خیلی مسئولیت داره و اگر من تا اینجا به بانک سادرات بدهکار نبودم شده از این کار انجام نمیدادم متوجه هستی بین خودمون میمونه پروفسور حتی نمیذرم کسی بو ببره عملیات پیوند مغز آغاز شده دو جوان پشت دستگاه عریضی هستن و دکمه ها رو کنترل میکنن خسرو و داریوش روی صندلی نشستهن. صفحه فلزی روی سر هر کدوم نشونه و دکترا میخوان قسمت بالایی سر اونارو باز کنن. دکتر سایی بالای سر داریوشه. اینجا نه، اینجا بهتره. درل لطفاً. با دریل سر داریوش رو سوراخ میکنه. همکارهای دکتر دستکش دستشون میکنن روی خسرو هم کار میکنن. به هر دو یه آلم سیم وصل. یونس نمیتونه ببینه و به همراه دکتر سائی میره. همکارای دکتر مشغول میشن. اثر داریوش یتی که پلاستیک در میاره. او بقیه تعجب کردن. یه قلموی آرایش، راکت تنیس و یه عالم خرتوپرت دیگه. عمل تمام شده. مغز خسرو به بدن داریوش پیوند شده. سر باند پیچیه و یونس میخواد داریوش رو به هوش بیاره. با پتک به شکمش میکوبه و داریوش به سرعت میشینه فرنگیس همسر داریوش عکسی از اونو جلوی روش گرفته گریه میکنه و با دستمال اشکشو پاک میکنه و دستمالو پرت میکنه اوه واه کوه از دستمال کاغذی داریوش البته با مغز خسرو با سر باندپیچی روی تخت ناله میکنه داره به هوش میاد چشمشو باز میکنه فرنگیسو میبینه بانای سر فرنگیس یه لامپ گرد مهدابی به شکل حاله از نور دیده میشه چی میخوای عزیزم؟ سلام فرشته خانم خدا رو شکر اومدم تو بهش چی؟ شیرنم همینجاست؟ تو همین طبقه است چی میخوای؟ حالت خوبه؟ آه. رئیس بیمارستان بالای سرش میاد و چیزهای داشت میکن کردید آقای دکتور کرد حرفم زر چه؟ شیرینی نمیخواد همیشه شکم بوده تا فردا هم باید دستور تصور غذایشون رایت کنم بکنم فردا بتونیم مرخصشون کنیم مشاكي که در خون آرامش مطلب داشته باشند. کج <تصفح> موقعی دکتر؟ حتما. فرنگیس از پله‌ها پای میاد و به مرادی یوسفی می‌رسه که مرادی داره با موبایلش صحبت می‌کنه. حتما خیلی هم آقای مرادی. کوشید کوشید. بفرمایید خانم جان. جنب به هوش اومد. فردا از بیمارستان مرخص میشه. خیلی متاسفم خانم بجام. بله؟ هجی، میگم متاسفم که در اون لحظه تاریخی من اونجا نبودم. فرنگیس میره. و مرادی از شدت به خاطر این خبر موبایلشو فشار میده. او موبایل میسوزه و دود میکنه. یوسفی فوت میکنه. شیرین همسر خسرو توی زیرزمین خونه کنار دستگاه خسرو از همه جا بیخبر و نگران راه میره و تلفنی صحبت میکنه. اگر الان یعنی نداره. من نگران نگران که نباش. نه این رو حتی که خودم بهش گفتم دیگه بار خونه یا با پول برگرد یا دیگه بار نگیر. پس بگو. وازم دعواتون شده. دعوای دعوان که نه. لا بازم مازم کرده رفته یه گوشه‌ای داره یه چیزی رو سرهم میکنه. در عوض وقتی برگرده دستش پره میخوام فقط اگه اینجوری برنگردید، چی می‌رم سر هم نکرده بچه‌ش. بابا حالا چرا عصبانی شدی؟ آخه چی می‌گسه دست این کاراشه. حالا کاری کمکی از دست ما برمیاد بگو. کمو کله. لطف شما ممنون. خونم از پس کارام برمیوم. فقط اگه بهتون زنگ زدم، بهتر بش بگین دیگه پاچه نذره اینجا. نمی‌خوام رخنشو ببینم. چی دکتر اورژانس باند سر داریوشو در حضور دکتر روایی باز میکنه شما حالتون خوب خوب میشه. به شرط اینکه داروهاتون رو مرتب مصرف کنید. دکتر اورژانس به دکتر روایی اشاره میکنه بله، پودرم. شما پودر ندارید تنها دو جور قرص و کپسول براتون نوشتم. پس پودرم چی میشه؟ باشه باشه. پودرم برایت می‌نویسم. ولی زیاد صحبت نوبت بکنید آقای جم. جان من جان نیستم منم نمیدونم شما کی هستید خب باید بگی کی هستی فرنگیس با یه دستگول بزرگ وارد اتاق میشه دوتا کارگر یه رک لباس رنگ و وارنگ هم پشت سر فرنگیس میارن کفشای داریوش هم دست فرنگیسه خدا تو رو دوباره به ما داد من زندگی دوباره شوهرم مدیون شما هستم آقای دکتر شما حتما حرفای زیادی داریم داریوش درم. یا هم. به عبارتی مرد عوض شده به فرنگیز نگاه میکنه نمیشناسه فرنگیس لبخند میزنه دکتر روایم گفت عزیزم حرف زدنه چقدر فرق کرده چند راست لباس قصد رو بردم که خودت خط کنی میدونی که من سلیقه تو رو ندارم عزیز. از جالتم خوب چیزیه خانم من که عزیز شما نیستم چقدر عوض شدی البته که تو شوهر عزیز خودمی آبا گرفتی گرفتین خانم من من متعربم دیگه انقدر خودتو لوس نکن داریوش داریوش کیه خانم حتما اتاق قحوا گرفتین یعنی چی مرادیو یوسفیان پیش دکتر رواه دکتر چی به روز شوهرم هارامو اون که پاک مغزش تکن خورده یعنی چی خانم منو نمیشناسه دائم میگه من داریوش جمع نیستم یه چیزایی میگه یه کارهای عجیب غریبی میکنه ایشون بrandnی سختی رو سرگذاشتن. سر گذاشتن. باید باش مدارا کنید. آروم آروم خوب میشن. شما داره. مطمئنی؟ بله، البته. چرا تلفن؟ میگه فکر نمی‌کنید بهتر بشید چند روز دیگه تو بیمارستان بمونه؟ نه. فرنگیس کسب پایداریش میکنه مرادی هم پیرهن و شلوارش رو مرتب میکنه و یوسفی هم می‌ونجاست که روپاتش کنه. همه با کاسه کارخونه دلشون برای اشوبت تنگ شده. مخصوصاً بچهای آزمایشگاه. این چرا اصلا خوبه بابا عادی گرفتین ما خارشون دارین آقایون میگه جنب نیستم زور کنیزه نیست. اصلا هر کی هر چی دلش میخواد همونه شما دلتون میخواد چی باشین خودم برادر من خود. بسیار خوب جواب منطقی تر از این نمیشه اگر خودتون اجازه میدین دراز بکشید ما مایه رو توی سرنگ میکشه و پشت سر داریوش میذاره خانم گوش بکنون دارید آه. فرنگیس مرادی و یوسفی روشون رو بر الان را راحت میشید. تا یه جدید روبد و پوشیده روی تخت بهوش اومده. پاتروش فرنگیس خوشحال روی تخت میپره. داریوش جا خوده و خودشو جمع میکنه البته. تنگ شده بود بطل. بطل. باتلر نوکر خونه با کت و شلوار شیکش و دستکش سفید میاد و خیلی خوشک نزدیک تخت میشه به آقا کمک کن بیان پایین میخوان کمکتون کنم قربان نه خیر من خودم میام پایین شما اگه ممکنه یه کم یه یهو بلند میشه و عقب و میره و از اونا میخواد که نزدیک نشن اما اون دو جلو میرن به در رسیده میدوی طرف پلها اون دو نفر به دنبالش دو قدم توی پله عقب عقب پایین میره اونا هم دنبالش همینطور پایین میرن داریوش نگاهش به خونه مجلل میفته و یعنی این چه خونه منه؟ البته که خونه توه باور نکرده آروم آروم از پله ها پایین میاد آشپز خونه جلوش سبز میشه زنه کمی چاق. یعنی تو شورا خانون آشپزمونو نمیشناسی؟ آشپزم داری؟ نمیدونی شورا خانم چقدر صفر نزد چقدر دعا کرد؟ سر میز شام سوپ قرم که برای آقا خوبه دوژه کباب بیوست که بخوره گوش بشه به تنید چینی چلمون سالات هایر مختلف میگو که فسفر داره برای مخصش خوبه و بوحلمان بریان شام مخصوص امشب آقا شورا خانم آقا هنوز مریضه نمیتونه از این چیزا بخوره سوپ فقط سوپ ساده با یک کم آب بکنیم دستون برم، شما چه زحمت که من خودم نیکشیدم، شما بفرمیده از اون برای خودتون بکشید اون سرد میشه، هی فرمیده شور شورا خانم ها بقیه ها بعدا ما همشه هم میخورن تا سوپتو بخور از دیرم اه، اینطوریه نیمویه تازه بدید با یکیشو برمی داره و همینجور درسته میخواد به چلونه که لیمو در میره به دیوار میخوره میخوره روی میز از بالای سر باطله رد میشه به سخف میخوره روی میز فرود میاد تونگی رو میندازه تون به بشقاب میخوره بشقاب روی میز مثل چرخ حرکت میکنه لیمو میفته توی ژل بشقاب میفته روی زمین پخش هسته. قِل میخوره تا به دیوار میرسه هنوز داره تکون میخوره فرنگیز از این صدا اعصابش به هم ریخته داریوشم تا اینکه باتلر باپا نگهش می میاد بعد همه یه نفس راحتی میکشن داریوش بلند میشه و دهنشو پاک میکنه کجا میری داریوش سوپ من میرم بخواب داریوش به دو میره باتلر باتلر و فرنگیس به دنبال داریوش باز به پله رسیدن داریوش عقب اقب بالا میره و اون دو هم از پله بالا میرن داریوش میست اونا میزن یه قدم بر میداره اونا هم سری دنبالش باز بالا میره و اونا هم دنبالش میرن داریوش میدوی توی اتاق و در میبنده و اون دو پشت در میمونه باز, باز کن چرا اینجوری میکنی تو آخر؟ میخوام بخوابم خانم میخوام بخوابم خب منم میخوام بخوابم اینجا؟ مگه جا کمه؟ خونه به این بزرگی این همه جا باست چی میخوی اینجا بخوابی؟ اینجا اتاق منم هست. تو هنوز به مراقبت احتیاج داری؟ من به هیچ چی احتیاج ندارم خانم محترم. من خانم محترم نیستم. من زنت هستم. بابا من خودم خونه دارم، زن دارم، زندگی دارم. آزار هزار. برای عجب گیری کردیمون. چقدر؟ فرنگیست گریه میکنه، کنار میره و باتلر پشت در میاد. درو باز کنید قربان. من شوهر این خانوم نیستم. یعنی تو یه سخته مغزی همه چی از یادت بره؟ این نگاه به خودت کردی؟ اگه شوهر من بودی داریوش تازه به فکرش رسیده که نگاهی به خودش بکنه آروم سمت آینه میره نگاهی به پشت سرش میکنه که اونا تو نیاد. به آینه میز رسیده و این که من این من, این من نیستم این که... فرنگیس و باتلر وارد اتاق میشه من عوض شدم چرا اینجوری شدم چی میگی تو آخه من چی میگم این که فرنگیز هرس میخوره و قاب اکسی رو بهش نشون. اونم نگاه میکنه این من هستم یا نه؟ این خودت هستی یا نه؟ نکنیم خای شناسنامت هم ببینی فرنگیز شناسامی رو در میره و جلوش می. بیا ببین بگیر ببین صفحه دومش شد به کینه درسته؟ صفحه اولم که عکس خودشه یعنی عکس داریوش جمعه خب اگه من... من که خسرو بودم حالا به قول شما جمع شدم. قیافه‌ام که واقعا عوض شده. من اصلا اینجوری نبودم. به چی قسم بخورم که من اینجوری نبودم؟ شناسمم این که درسته. یعنی من با شما ازدواج کردم؟ خب معلومه اونم مدرک. خب من که دوباره ازدواج نکردم، کردم؟ نه. گیت شده. توی اتاق راه میده. پس شیرین چی؟ اگه اون زنم نیست؟ من زنتم تو هم فقط یه زن داری نکنه؟ نه نه پس چی؟ جوابی نداره سردرگم میره بود لبه تخت میشین مشکلم اینجاست اگه من که خسرو بودم حالا نمیدونم واسه چی چطوری جمعم بنابراین نتیجه میکیدیم پس لابوت تو هم شیرین بودی حالا به خودت فرنگیز شدی درسته؟ من که نمیفهمم تو چی میگی ولی من فرنگیسم تو هم داریوش جمع جدی میکی؟ بله فرنگیس خدا رو شکر بلاخره اسمم رو صدا کردی منم چی درسته؟ آها آفری کم کم داره همه چی یادت میاد مرد این خونه بزرگ این خونه مدیرامل و سهامدار داره شرکت و کارخونه داریوش متعجب از داروش داروش پر من کارخونم دارم؟ البته که داری کارخونه چی؟ کارخونه پودر و مواد شوینده. پودر میسازیم؟ بله دیگه. یکی آلیه عالیه، عالیه. مگه من دیگه چی میخوام؟ هیچی دیدی حالت خوب شد؟ آره، آره خوب شد. خدای من چقدر خوشحالم. میرم مکسودی که تو کارخونه آه. گرفتی بیارم. الان برمیگردم. فرنگیس خوشحال می‌شه. حالت تو هم خوبه. سپاسگزارم قربان. اگه خواب باشم چی؟ شما خواب نیستید. دلم می‌خواد مطمئن شم. کارخونه پود، این خونه پود همه چی؟ میتونه یه چک واقعی به با من بزنه که اگه خوابم بپرم از خواب قربان بت میگم بزن، بزن دیگه بزن بله قربان. باتلر محکم میخوابونه توی گوشش اونم روی تخت به دوم میشه مادام شما ترسیده؟ ازای هیئت مدیره مثل قبل نشستن کیف های ایستاده روی میز و با انگش روی کیف زعد گرفتن یوسفی در مقابل اونها نشسته و موچه شرکتتم برای ر تلاشهای های من موقع مرادی رئیس امور مالی و اداری شرکت به هیچ جا نرسید. هیچ کدوم از بانک ها حاضر شدن به ما اعتبارار بدن. نه بردا. ما برای پرداخت حقوق کارگران؟ با شنیدن اسایی زنگ همه مبایلدار رو در میارن و دیگه گوش نمیکنن نه موبایل کسی نیست. ساعت زنگار یکی از احضاست قردی جمعه جناب آقای مرادی بگرم بگرم. بگرم. مرادی دست پشت کمر از پشت پرده بیرون میاد. مرادی جلو میاد. یوسفی هم جلوی پاش بلند میشه منچین صندلی یوسفی رو برای مرادی میزره مرادی میشه یوسفی هم میخواد بشینه که حواسش نیست و ایشون که بقیه سهام شرکت یک جا بخرند و البته به قیمت امروز که میدونید خیلی پایینه. من خیلی مخالفم همه میتونیم سه هر ماله بریم پی کارم چیکار این پیشنهاد ایشو بود البته در زمین خانم جمع اطلاعات دادن که آقای جم الان دارن میان جا بس بتره. هر چه زودتر تصمیم بگیریم چون متاسفانه باید خدمتون عرض کنم که آقای جم از دست دادن مشاعرش می فاصله فرنگیس از پلای خونه پایین میاد میشه این ترس مگه پای آقا می خونه برسه با دیدن ده نکرده زبانم لا دواره سکته کنه داروش لباس پوشیده خیلی منونه کیف زیر بران از پرلا پایان بود خب دیگه من حاضرم بریم حالی جناب سلامتی کجا تا شوید برای؟ کارپونه کارپونه خودم مگه شما دیشب نگفتیم من کارپونه دارم نمیشه که بربان چرا؟ رالنده ماشین ماشینو برونه؟ خب خودم رانندگی میکنم نه، آخری دکتر رانندگی رو برای قداقن کرده. تو نباید دوچاره هیجان بشی. من همین همینجوریشم خیلی هیجان دارم ببین. آقا کتتون. بله. برشت. داریوش با عجله کتشو که مادام شوگا گرفته پس Hey. Passab منم manamir. راننده داریوش جنب پشت گند. آقا جان. دستشو می‌گیره. چه معنی داره؟ خدایا 10000 مرتبه شکر. وقتی از بچه‌ها شنیدم که به سلامتی خوب شدید. فقط یادم نبودم گفتم بیام دست تو تو کی هستی بچه‌ها جیان یعنی آقا به همین زودی خوشنگ نوکرش راننده سابقشونو فراموش کردن راننده سابق خودتون اخراجم کردید من بله خب دوباره استخدامت میکنم. اتفاقا به موقع اومدی آقا جان به دست من اشیایی دارید داریوش و پشت سرش فرنگیس به ماشین رسید ماشین من اینه آره خیلی خوب. سوار شو نه اول سابر. فرنگی سوار میشه و بعد داریوش راننده در رو میبنده و یه اداروش نخونه میکنه از دل چی شد؟ چی چی چی میخوایید کارخونه؟ نه نه نه بریم بریم با همون وضعیت به در کارخونه رسیدم راننده پیاده میشه و در رو باز میکنه داروش پیاده میشه فرنگی سلام حالت چطوره؟ خوبی؟ خیلی من نخورمم یه گفتم یه روز میام مگه قرار باشه حالا اومدم سلامت شکر بابا خدا را شکر که شب آوردی بهتر می نه آسانسور چرا داریوش مگه چیه گفتی پودر کجا میسازیم سالن تولید که اون بره اون بره اول پودر به همراه فرنگیس به طرف سالون تویلید میرن و درمان متحجب به اونها مگرم سالن تویلید به تلی از پود که روی زنی ریخته شده رسیده زانو میزنه و یه مقدار از اونا رو بر میداره میشینه و پودرا رو توی هوا پخش میکنه فرنگیس و بعد تعدادی از کارگرها به اون نزدیک میشه میدونستم بالاخره یه روز وقتش میرسه میگی نه؟ حالا میبینی چیکار کار سلام وحید جان خاله جان سلام امروز برای بچه‌ها گفتن شما اومدین کارخونه ما اومدیم تکلیف اون هنج روشن کنیم دقیق راستش به اینجا اون رسید سری تکون میده که میانی چی چی به اینجا تو رسیده بدبختی بی پولی بلا تکلیفی بیکاری یعنی شما نمیدونین اه... نه شما نمیدونیم چون همیشه از اون پنجره برای ما حرف زدیم شما نمیدونین چون برای اولین باری که تو سالون تولید میای خب حالا که من انجام پیشی شما پس حالا از اول اول برام همه چی رو بگو تو من بفهمم چی به چیه چی کی به چیه تو این کارخونه اخر چی دفتر شرکت اعضای هیئت مدیره همه موبایل به دستون بت آقایون آقایون ما باید توی این جلسه تصمیم نهایی بگیریم نمیشه بیشتر از این منتظر هزار تا کارگر اون پایین بیکارن یه وقت ممکنه آشوب و بلبای به ولی جنگ که تو جلسه نیست هر چی باشه هنوز رسمن مدیر آمله داریوش و فرنگیس و نمایده تو توی اتاق من که عرض کردم آقای جم تقریبا عقلشون رو از دست بدم من به خانمشون صحبت کردم قرار ایشون بکالتی به من بدن تا از طرف ایشون کار پیصله فیصله بدم سلام من داریوش جم هستم و به کسیم بکالت نمیدم آقای جم؟ بله من مخالف فروش کارخونه یا باگذاری سامش هستم ولی ما ورشکست شدیم چرا نمیخواد قبول کنه آقای جان هزار کارگر کارگرون پایین باسنن حقوق عقب مونده شونو میخوان نه ما ورشکسته شدیم کارگران با من نماینده اونا فعلا اینجاست بهتره اجازه بدیم خودشون صحبت بکنن من از هیئت مدیر محترم دو ماه وقت میخوام فقط دو چه چیکار کنید که این انقلاب مهم صنعتی رو بندازین فرمولاسیون رو عوض کنید فرمولاسیون عوض کنی بله البته امروز همه تولید کنندها از سورفکتانت های آنیونی استفاده میکنند از سدیم تریپلی فسفات به عنوان بیلدر یعنی یک سوم فرمول پودر در حالی که میزان فسفات لازم در نوع آپای مختلف سخت و فرق میکنه همه دارن شاخ در میارن سوال کی به این موضوع توجه کرده ها بهتره بگیم هیچکسی آقا یجام چی تو کله من فقط دو مافخ میخوام تا این پودر جدید بالانسیتای بالا بسازم خیلی وقت ماله همچی فرصتی هستم حالا که نمیدونم برای چی و چه این فرصت پیش آمده دلم میخواد نتیجه تحقیقات و تلاشم رو به همه جهان عرضه کنم همین من که گفتم آقای جم آقای عزیز ما در انبارامون ذره مواد اولیه نداریم ما حتی برای وارد کردن مواد اولیه یک دلار ارز نداریم با چی تولید میکنید باد هوا من به مواد اولیه خارجی احتیاج ندارم همه مواد اولیه لازم تو مملکت خودمون پیدا میشه همش اینجاست و اینجا ح مدیره به من ما فرصت میده آیا هیت مدیره به من دو ما فرصت میده هیت مدیره به من ما فرصت میده؟ نه مبارکه فرنگیس و نماینده کارگر خوشحال میشن و مرادی عصبی سیبیلشون میجه آقای جمع لباس معمولی پوشیده در کنار کارگرها در سالن خودش خودشم داره کار میکنه روی فرمولاسیون پودر کار میکنه پودر آماده است و از دستگاه خارج میشه. مقداری از اون بو میکنه. کنه به عدسه میافته برای سر دستگاه استاده و نظارت میکنه و حالا بسته بندی های تک که یکی یکی از دستگاه بیرون میاد. کارگران مدیر خودشون رو روی دست بلند میکنن و همه خوشحالن مردی با یه سینی پر از شیرینی توی سالن میان همه آقای مدیر رو ول میکنن میدون سراغ شیرینی و داریوش جم کنار کارتون های تک به زمین این همه موفقیت برای ما بگی، بله، خیلی ممنون. توجه بی سابقه محافل علمی و خبری جهان به تولید پودر جدید. تک. یه روزنامه دیگه. داریوش جم نابغه ایرانی، دکترای افتخاری آکادمی علوم سوئد را دریافت نمود. جم با فرنگیس در یک رستوران بزرگ هستند. روی همه میزا شمی روشن. گارسن که یه لیوان بستنی توی سینی داره به اونا نزدیک میشه. گارسون اینو ببرش مثل همیشه نیست بستنیشو به گارسون پس میده خیلی عجیبه سلیغت چقدر عوض شد جدی. بهتر شده یا بدتر شده دستی به موهاش میکشه رو میزی میز پشتی رو میکشه و با گروشهش دهنشو دیگه شم میز پشتی روی میز میفته و رو میزی آتیش میده ولی اون حواسش نیست من بهت افتخار می کنم. او نه. آتش بیشتر میشه. گفتم میگم بهت افتخار می عادت ندارم ازم تعریف کنم چرا؟ منو ببخش. تو تو این چما خیلی تنها موندی. مثلا خیلی شلوغ بود میدیدی که. حاضرام هر جا که تو باشی همونجا باشم. حتی توی کارخونه. مرسی. گارسونی با ساز ог نیروی آتش میزنه. او رصید یه چیز نقابل برات خریدم یه حدیه داروش آب میوه و فرنگیز کیف میکنه و همه در رفت و آمد برای خاموش کردن شعله عظیم پشت سر داروشن که خودشون اصلاً حواسشون است داروش الان برات پیوش میکنم خب دیگه بلاخره باید هم سهمی اصول کارتون رو برینم میزای آتیش گرفتن اجازه میدی بیرون برات پیداش کنم اینجا یه خورده گرمه درسان درمون صورت حساب رو خمم داروش و روزنامه میخونه درباره باره و چیزهای دیگه چای هم می‌نوشه که یهو چشمش به یک اطلاعیه میفته مرکز تحقیقات و تعویضات پروفسور سایی از کسانی که صاحب عکس جسد فوق با مشخصات سن حدود چهل سال قد متوسط و باریک اندام رو میشناسند می‌کند میکنند جهت شناسایی و تحویل جسد متوفا با این مرکز تماس هستن فرماید نامبرد طی حادثه جان به جانافرین تسکیم کرده است آدرس خیابان پامچال غربی پلاک شانستن پروفیسور این که منم اون من سابقم آرام شیرین چی؟ شیرین کجاست؟ تلفن رو برمیداره. دستش میلحرزه. شماره خوننش رو یعنی خونه خسرو رو به یاد میاره و میگیره. منتظر جوابه با شنیدن صدای شیرین ترسیده گوشی رو پرت میکنه. چشمش گرد شده خونه مرحوم خوست شیرین فلید. در رو باز میکنه ببخشید منزل آقای خوست پذیرش بفرمایید بری تو بیا. سرکارگر به همراه کارگرای کارخونه تعداد زیادی کارتون پودر تک آوردن که توی حالات خونه میبرن شیرین نیت شیرین به کارخونه اومده و با درمان صحبت میکنه سلام آقا نخواستم با رئیس این شرکت صحبت کنم میشه؟ آقای مدیر آقا بله، اسمشون چیه ؟ آیا داریوش جمعو چیکار داری؟ میخواستم در مورد این پو باشون صحبت کنم یه کار خیلی مهمه خصوصییه. داریریوش توی آزمایشگاه شیشه آزمایشگاهی رو تکون میده و ماده رو حل میکنه و همزمان چیزی رو میخونه ناگهان شیین رو می که با یکی از متسدی آزمایشگاه صحبت میکنه روش رو برمیگردونه مستصل شده میره که خودش رو مشغول کنه شیرین آروم آروم وارد آزمایشگاه میشه داریوش پشت کمودا مخفی میشه داریوش دستی به مواش میکشه و خودش خودشو مرتب میکنه از پشت شیشه ها شیرین رو میبینیم که توی آزمایشگاه به دنبال آقای جمه داریوش آروم سرک میکشه شیرین اونو نمیبینه و قصد خروج از آزمایشگاه رو داره که شیرین شیرین میست و برمیگرده آقای جم و پشت وسایل آزمایشگاه می‌بینه. خیره به شیرین نگاه میکنه آقای جم گفتن شما مدیر آمده این کارخونه هستید. ظاهرن شما مدعی تولید این پودر پودر تک هسته پس بزنید یه چیزی رو بهتون بگم من خیلی خوب میدونم که این پودر کار شما نیست یعنی کار هیچ کس نیست جز کسی که من الان اومدم دنبالش بهتر اینم بدونید من تو تصمیمم خیلی جدیم خیلی جدی مدت ها بود دنبال یه همچین سر نخی میگشتم امروز پیداش کردم کسی که من دنبالشم اسمش خسروه خسرو پذیرش مطمئنم که قبلا اسمشو شمیدیم درسته؟ درسته؟ یعنی شما اون رو اون کجاست؟ خسرو کجاست؟ داروش با لبخند در سکوت نگاه میکنه خواهش میکنم آقا حالش خوبه؟ و جم جوابی نمیده تا فردا بهش مهلت میدم برگرده خونه فقط تا فردا وای به روزش اگر نیاد داروش با حالتی مظلومانه تحیید میکنه فردای اون روز داروش جم با یک کابشن ساده در یک دست دست گل و در دست دیگه کیفش توی کوچه راه میره تا به در خونه شیرین و خسرو رو میرسه مکس میکنه نگاهی میکنه و لبخند به لب زنگ میزنه و میره عقب نیسته خودش رو مرتب میکنه و صاف مییسته منتظر شیرین اما کسی در باز نمی‌کنه کمی ناامید به در خونه نزدیک میشه سرش یوری میکنه وری بلکه صدایی بشنوه که یهو شیرین درو باز میکنه هر دو هول میشن کجا بودی حالا شیرین وارد خونه میشه شیری که شال قرمزی هم سرشه جاروی بلند دستیور بیخ گلوی جمع بذاره اون رو به در خونه میکوبه دره هسته منم خسرو منم دانم خفه میشم اگه خسرو بودی که میدونستم باقید چیکار کنم این گرمانته شیری لازم نکرده مگه نگفتم بودم بهش بگو بیاد مگه نگفتم بگو اون بیاد اگه جرعت داره میدونم بابا من خودم شوهرتم خسرو منم بایدونه باره بی بله ها رو خبر میکنم حسابتو وزرم که به تا. یکی زورکی کیم که من زنتم، زن خود آدم میگه من زنت نیستم. انقدر فشار نده. چرا اینجوری میکنی من خسران دیروز نمی‌تونی سمتم بگم. من نبا میخوام صد سال است تو به با نبا پول نبا کار مردی که این همه وقت زنش زل کنه. او دردتو شکستی. دردت من معذرت میخوام. تو رو خدا باور کن. من خودمم خسروام. به من نزدیک نشو. ببین. من پولدار شدم، معروف شدم. همش به خاطر پودر جادوییه. ببین که اینجا رو نگاه کن. مگه تو رادیو گوش نکردی؟ تلویزیون نگاه نکردی؟ روزنامه نخوندی؟ همه جا صحبت پودر جادوییه. پودر که من اینجا توی این زیرزمین درست کردم. الان مدیر عامل همون کارخونه‌ای هستم که تو دیروز اومدی. گیدی چه کارخونه‌ایه؟ یه شب تو اون رو درست نکردی. راستشو بگو. نکنه بالای سر خسروه من آورده باشی و فرمولشو دزدیده باشی من الان این کارا هستم تو منو نمیشناسی. این چه حرفیه؟ خودم پود رو ساختم پیشبندت یادته؟ پیشبندته که سیاش کردم بعد با همین پود درستش کردم بهت گفتم این پودر ما رو پول دار میکنه باش نوبل شیمی میگیرم دیدی ای من میگفتم تو ای میگفتی خیالات میکنی حتی اگه خود خسروه بودی تو خونه راد نمیدادم <متصف> چه شبایی که تا صبح گریه نکردم چه جاهایی که دنبالش نگشتم چه بدبختیایی که نکشیدم خسرو مرد برای من خسرو مرد ولی من زنده جلوی تو بایستدم آقا ازت خواهش میکنم با احساسات من بازی نکن من نمیدونم تو کی هست کجا این اطلاعات تو ولی اگه همه مردم دنیام جمع بشن بگن تو خسترایی من بازم میگم تو خسترو نیست؟ تو همیشه از قیافه من دلخور بودی یادته می گفتی بل نسبت خر بودی که زن من شد یادته خب حالان خیال کن من رفتم جرهای پلاستیک کردم میریختی شدم چطور همه میرن دماغشون عمل میکنن منم یکیش خب فوق فوقش حالا خیال کن من من رفتم همه جا و جراح پلاستیک کردم. کشکالی داره مگه من چیم از مایکل جکسون کم داره من نمیتونم همچین خیالی بکنم شیرین من واقعا تو رو دوست داشتم یعنی دارم تو این مدت هم فکر می‌کردم، فکر می‌کردم تو هم عوض شدیه کنار منی از اینجا برو آقا برو دیگه میل خودته ببین من دیگه الان کارخونه دارم خود درست میکنم من جایزه نوبل شیمی هم هستم ولی اگه نمیخوای منو ببینی، خب من میرم میگم میل خودت خداحافظ خداحافظ آقا من رفتم جنب نرفته و عین خوصو پشت گردنشو میخوانونه من دارم میرم شیرین من دارم میرم از پشت ملافه بیرون میام خوصا ها... شینی مرادی پشت میز نشسته یوسفی هم مقابل میز بله بفرمایید خانم بچم من مرادی هستم سلام آقای مرادی حالتون چطوره افتزاه خانم افتزا ای خدا نکنی شوهرتون من از پستم برکنار کرده امروز حکم اخراجم و زده داده دستم راست می. اونم توی این موقعیت درخشان شرکت که خدا میدونه من برای رسیدن بهش چقدر تلاش کردم بله درسته میدونم میدونم پیش شوهرتون واسطه بشید درست است که من از کارم برکنار بشم اونم توی این موقعیت که رقبا مثل گرگای ما رو محاصره کردن به ما حسادت میکنن. من باهاتون همدردی میکنم ولی دیگه تو کاره جم دخالتی ندارم به خاطر من خانم جم. روز رو که شوهرتون بستری بودن یادتون بیاد که اگه من نبودم چه اتفاقی میافتاد؟ بله. نمیخوام این نمیخوام این کلمه رو هی تکرار کنم ولی ناچارم شما یه جوری به من مدیونید. والا چی بگم این برام بکنید. سعی میکنم. قول میدم. خیلی ممنون خدا حفظ. امروز من از کار برکنار کرد بردام لابود تو رو آره باید یه توتعی خیالتی چیزی بکنیم بافرین نمیدونم چی بگم حرفایی که شما میزنین اینا حرفای خسروه فقط اون میدونه مقابل جمع پشت همون میزی نشسته که روزی با هم غذا میخوردن یعنی ممکنه خود خسرو باشی؟ ممکن نیست ولی یه چیزی مسلمه تو زن من هستی و باید با من زندگی کنی ولی من نمیتونم باور کنم زن تو اه... چشمت میگه راست میگی خاطرات و اطلاعاتت هم درسته ولی نمیتونم چرا؟ نمیتونم باور کنم زن حتی اگه خود خود خسرو هم باشی الان یه مرد دیگه ای الان یه نامهرمی خب دوباره عقدت میکنم شیرین و جم توی محزر محزردار شناسنامه عکسدار خسرو پذیرش رو نگاه میکنه نگاهی به جم میگذره شما میخواید اخو کنید یا این برادر نه برای برادرم نمیخوایم میگرمشتن خودمه پس این برادر کیه برادر نیست منم؟ شما که شمایی؟ این کیه؟ تو یه دقیقه برو بیرون شیرین میره بیرون اون منم منم اونم ببینید این شناسنامه به درت میخوره؟ از تو کیفه شناسنامه اکس داره جمعو در میاره این درسته حالا شناستامه ای خانم این خانم که شوهر داره؟ خب بله زن خودمه اگه زن خودته خب چرا دوباره میخوای عقدش کنی؟ خب کار از محکم کاری ابن همه طلاقو محکمش میکنن که آقا حالا یه خری پیدا شده میخواد عقدو محکمش بکنه ایادری داره نه محرزدار صفحه دوم شیرین شیرینو نگاه میکنه ولی این خواهر که زن این برادره آقا جون قربونت برم آخه خواهر برادر که زن شوهر نمیشن میشن پس چی پس چی اصلا آقا این آقا مرده یعنی شوهر این خواهر مرد بله پس چرا شناسنامش نشده خب لابد میخواستن کپنانشو بگیرن اینا ها اینم جنازش اطلاعی روزنامه رو نشون میده حالا خیرت هم هرچی باعتل کنی باعتل کن زبد کنی هرچی باعتل کنی خودتو هم که یه زن داری ها جزت بالا اجازه ی زن اول داریوش یه بسته پول روی میز محزردار میذاره مبارکه داریوش حلقه رو توی انگشتش میکنه و شیرین از توی آینه میبینه و لبخند میذاره شیرین و خسرو جدید به در آپارتمان رسیدن بفرمید خونه دو مبارک او قیاده هست خوشت میاد؟ خیلی بالکن اون برای؟ بالکون؟ آره چی میخوام از خوشی خودم رو کنم پایین دست دستگردار برای پیدا کردنت خیلی زحمت کشیدم صبح شده داریوش یا بهتره بگیم خسرو که در کنار شیرین بوده تونتون تون لباس میپوشه میدوی و شیرین پشت سرش دیرم شده آخه خیلی دیرم شده انقدر عجله نکن خیلی دیرم شده ببین میگم مطمئنی من دیگه نباید دارم سر کار تا وقتی که من زندم ام کتشو میپوشیم آخه همه چیز مثل رویاست مثل خوابه میترسم یهو بیام داشم بده منو کیفو کیفو که بغل بود بیدار بیداری منم فکر خوابم ولی ثابت کرد که خواب جم وارد دفترش میشه سرخوشه منشیش نگرانه آقایه جم شما سالمی؟ چطور تمام مگه؟ خانمه تو تمامه میمارستانه دانبار از اون گشتم خدای من تلفن خونه توی اتاقش میره نگاهی به منشی میدازه عزیزم فرنگ داروش تو کجایی؟ توی دفترم دنبالت خوبه؟ خوبه خوب تو که منو کشتی همه جا رو دنبالت گشتم دیشب کجا بودی؟ تا صبح روی پروژه کار میکردم چه پروژه؟ آخه میدونی چیز دیگه یعنی محرمانه سینی اگه الان بگم لو میره مقالا به من خبر میدادی؟ معذرت مذرت میخوام بکیری منو مشغول کردم. دلم برای تنگ شده منم هم تو خیلی بهتادت کردم منتظرت هستم. اه... اصلا اصلا امشب میرم بیرون. میخوام یه جشن کوچولو برات بگیرم. نمیخواد عزیزم. تو خسته ای تمام شب و بیدار بود ببین دیگه حرفی نباشه. امشب میبینمت. لابیه هتل شیک. موزیک زنده. گیتار و پیانو. داریوش از راه میرسه با دو شاخ گل. یکی رو روی پیانو میزنه. نوازنم تشکر میکنه. داریوش روی مبل ها دنبال فرنگیس میگرده. آآ پیداش میکنه. قرنگز با اشاره به ساعتش میگه که دیر کردی. داریوش میشینه و ای میاره. شیرین خیلی خوشحال توی خونه است. زنگ زد. باز میکنه. پدر و مادرش با یه گل. مادرش روی تخت میره و بالا پایین میبره. دستشوی تمیز و بزرگم نشونشون میده. پدر و مادر با بین وسایل صوتی و تصویری رو نگاه میکنن و اونا هم لذت میبرن. شیرین با خوشحالی میوه میاره حالا وقت شامه میز شام چیده شده پدر و مادر شیرین گرسنه قدم میزنن و منتظر خسران نه اومده دوربین به اونها نزدیک میشه و به یه چراغ فانوسی میخوره و چراغ میشکنه شیرین عصبی پولو رو میاره و خسرو یا همون داریوش در کنار فرنگیس با هم بستن میخوند میگن و میخوند شیرین و پدر و مادرش غذا نخورده پشت میز نشستن پدر و مادر خوابن و شیرین بیدار قصدار شمعه روی میزو فوت میکنه بله سوب شده و همسر نیومده فرنگیس تخم مرغ آب‌پز برای داریوش آماده کرده. داریوش با عجله در حال پوشیدن کتو شلوار ورده آشپزخونه میشه. برای شام گفتم مامان اینا بیان اینجا. آخه میدونی خیلی وقت ندیدیمشون. باشه باشه باشه. کیفه. داریوش خوشحال و شاد وارد دفترش میشه. لحظه خودشو به بیخیالی میزنه و عجلوی این منشی رد میشه. پشت گردنشو می‌خوام. گوشی گوشی چه خوب شد و بدید خانمتون خواهی تلفن هستن. میگن تمام دیشا دنبالتون میگشتم بس کنم اونجا. آره آره. نند چی صدای خاطر با شده. چتی؟ مرا. گوشی. الو. خوشم شیرین. آبروی منو جلوی پدر و مادرم بردی. دیشب تا همه دنبالت گشتم. کجا بودی؟ تا صبح پروژه کار میکردم. محرمانه است اگه الان بگم همه چی لو میره پس چرا به من نگفتید واقعا معذرت میخوام بد جوری من مشغول کرده بود آخه من چند ماه ندیدمه خب دلم برات تنگ میشه منم همینطور چطور امشب تلفیشی در بیارم یه جشن کچولی چطوری؟ جشن؟ آره قلم کاغذ بردار آدرس این رستورانی که میگم یاد داشت فرنگیس راه میره و تلفنی با مرادی صحبت آلو. میکن سلام آقای مرادی منتظر خبرای خوشم واقعا باید منو ببخشید کلی کار شما از یارم رفته بود جم. میدونید جم پریشب تا صبح نیومد خونه منم خیلی کلافه بودم دیشبم شبم که اومد دیگه اصلا حواسم به کار شما نبود واقعا منو ببخشید دیگه فراموش الو الو مرادی کلاه به سر پشت میزش نشسته با نگاه خصمانه چراغ آویز سخم رو برگد در بیره باز میکنه کاغذی رو کنار بزنه هفتیری نمایان میشه برش میداره انتفاهم اما ازش منم رهمی تو. دیگه توفنگ نداری؟ نه جمع که کیفش زیر بغلشه از در شرکت بیرون میاد و سوار ماشینش میشه روشن میکن و راه میافه مرادی و یوسفی که پشت ماشین مرادی به کمی نشسته بودن سوار ماشین میشن و دنبال شاه میافتن فرانگیز در کنار پدر و مادرش پشت میز شام منتظر داریوشن و نیامده باتلر نوشیدنی میریزه لابی همون هتل. نوازنده ها می نوازن و نوازنده پیانو میخونه داریوش از راه میرسه مثل دفع قبل شاخ گلی رو روی پیانو میذاره سریع میده خاننده هم تشکر میکنه با دستگلی که دستش راه میوفید و دنبال شیرین میگرده. داریوش که البته اینجا باید بگیم خسرو به شیرین رسیده روی مومنی میشینه شیرین اشاره به ساعت میکنه که یعنی دیر اومدی و خسرو ای برای شیرین میاره. خسرو دستگل گلو جدای شیرین میگیره. و مرادی موزی که از پشت شیشه هتل این صحنه رو میبینه خوشحال از آتویی که به دست آورده. دست به هم می‌کوبه و میماله و سمت ماشینش میره و پشت رول میشنه یوسفی هم توی ماشینه. کششش، اونم با پوشمش. خودش کرد. باز دوباره از یارم دیاره. توی دفتر شرکت. مرادی جلوی میز منشی مدام قدم میزنه و منشی با کامپیوتر بازی می‌کنه. کاری نداره خانم مش نداره آ مرادی معذرت می خوام این خدمه زدن شما اسقومی منو خوب کرده هی اشتباه می زنه راست بگم برو خرم با تو خوش ببرم نمی؟ مونچی وسایلشو جمع میکنه کیفش رو برمی داره و میره خره مرادی گوشی رو بعده الو بله شما ای دقایق مرادی الو می کیفش به کنار در میکنه تمام وسایلش میریزه جان وارد شرکت میشه با آسانسور نه با پله مثل همیشه مم. به در دفترش رسیده منشی با گریه وسایلش رو جمع شما چهجایی ای؟ آقای مرادی خودعه اعصابمو خورد کن نذارش یک گنگ بازی کنم آخی ای این نداری در جام کنم برو تو حیات بس کن باشه منشی با گریه وسایلش رو جمع خودشون تشریف آوردن من گوشی میدم به ایشو خانمتون ظاهرا مرادی همه چیزو گفته ملو؟ واقعاً میخوام عزیزم خودتو ناراحت نکن عزیزم پیش میاد من اصلا نگران نشدم راست میگی؟ معلومه تا صبح رو پروژهت کار میکردی دیگه چه کاری؟ فقط میخواستم مطمئن بشم از بابت بابا مامانم معذرت میخوام با جشن کچولو چطوری؟ نه. من مشهدی خاله منزله بابا اینا میدونی یکم دلخور شده بودن اینه که میخوام برم از دلشون در بیارم باشه بعدش میریم نه اه... تا صبح میخوام اونجا بمونم البته اگه از نظر تو اشکالی نداشته باشه البته که نداره هر چقدرم تو بگیری من قبول دارم تو هم میتونی بری سراغ پروژت من اینکه دلم برات تنگ میشه ولی خب باشه بعدن میبینمت مواظب خودت باش هستم عزیزم فرنگیس یه وردنه برد. مرادی جلوی خونه جمع از ماشینش پیاده میشه در صندوق عقب رو باز میکنه و یکی خیلی خیلی سنگین و بسختی از روی صندوق درم فقط خدا کنه راست نگفته باشین آقای مرادی اولش من خودمان باورم نمیشود فرنگیس پا میشه و میره مرادی از موقعیت استفاده میکنه. در واقع سو استفاده میکنه. سراغ همون کیف سنگین میره. درشو باز میکنه. بسته‌ی رو در میاره. میدوئه و توی بوفه جاسازی میکنه. بسته‌ی دیگه. یه جای دیگه. بسته‌ی دیگه. مرادی خوشحال از کار خودش میرفسه. یه بسته دیگه و باز هم بسته کارش تمام شده. به همون مبل برمیگرده و دزدکی مقدار آجی توی جیب بارونیش میریزه و میشینه. اصلا اتفاقی نیفتاد باتلر جلو مرادی میگیره مرادی با اشاره میگه بذار روی میز میز میذره روی میز و میره فرنگیس دست مال به دست بر میگرد مرادی کیفشو بر میداره او خیلی سبک شده و به هوا میره فرنگیس با تعجب نگاه میکنه باید منو ببخشی به شما حد میده خانم بجام من به شما حد میدم شما دوست خوبی هستید آقای مر مرادی میره میبینم تو خسرو همممش تموم شده حوله تمپوش پوشیده و جلوی آینه موهاشو مرتب میکنه بشه متشکرم مرادی با فرنگیس و یه مامور نیروی انتظامی از پلای ساختمون شدین و خسروی جدید آروم بالا میاد آره یه تبرد باشه باشه. خسرو جون شیلی نو خسرو, خسرو در در کنار اوپن رو میخوان صبحانه بخورن که خسرو در رو باز میکنه فرنگیس و معمور خسرو یا داریوش چشماش گرد میشه فرنگیس زهر ما فرنگیس چیکار میکنی خورم؟ شما باز داشتید بیارا کنید ترو وز میخوام شما توقیف هستید من توضیح میدم چه جور فرمایید تو کلانتری <laughs> پروژش پروژش هم هست شیرینو میگه قربان متهمو در یه وز زننده آقا من تازه از همون دروغه بوده بودم شما ساکت باش <Laris> مگه خود شما کت شلوار میزنید چه جوری درز بدین کلیه وز زننده ای که فقط یک کت اورلی تا <beau Leonardo scholarship> تا اینجا تنش بود دستگیرشون کردیم آوردیم شما بفرمایید سار آقا این وصله ها به من نیمی چسبه همه اولش همینو میگن ایشون همسر قانونی من هستن دروغ میگه بنده هم شاهده. تازه اگه ایشون حقیقت رو بفرمایید بیرون آقا مسئله ناموسیه مرادی کلاه بر می برمیداره نگاهی به فرنگیش میکنم میره شما میتونید ثابت کنید که ایشون همسر قانونی شما هستم بله از جیب شناسنامی در میاره به افزن نگهبان میده این بنده. شناسنامه شیرینو هم میده اینم شناسنامه ایشون. افسر نگهبان به هر دو نگاه میکنه شیرینم کرده بله درسته درسته؟ از شما اطلاعی نداشتید این جواب محبت های من؟ میدونی چند شب تا پشت در اتاق تو بیمارستان میدارموندم؟ شما باید رضایت همسر اولتونو جلب میکردید من از اول یعنی از دوم؟ از توی همون بیمارستان به ایشون گفتم که من زن دارم گفتم یا نگفتم گفته بودم که من جم نیستم مگه نگفتم من زن دارم گفته بودم یه چیزایی میگفت ولی به من نگفته بود یه زن دیگه ای داره اجازه بدین دقیقا چی گفتن میگفت من جم نیستم زن دارم از این حرفا یعنی چی جم نیستم پس این شناسناما ها چیه جالیه نه یعنی بله من جمع هستم یعنی از اول نبودم بعد نمیدونم چطوری شد که شدم به خود ایشون هم گفتم توی بیمارستان نگفتم از همونجا شروع شد حالتون خوبه من خیر اصلا کاملا معلومه به هر حال تا جایی که به ما مربوط میشه پرونده کاملا مختوم است مختومه شما خانما همسر قانونی آقا هستید نه گناه ایشون اینه که موضوع رو از شما مخفی نگه داشته ما چند چندتا از این نمونه ها بینیم در هر ایشون خلاف شر نکردند. باید برید با هم سازش کنید. به شما هم توصیه میکنم خودتون رو به مشوردی نزنید. خیال نکنید مثل الان میتونید با پرت و پلاگوی رد گم کنید. برید بشینید رو راست حرفاتونو با هم بزنید. بعضی از آقایون تا شلوارشون دوتا میشه، اینا یه زنی دیگه میگیرن. ازدواج مجدد به این سادگی ها نیست. کسی که دوتا زن میگیره، باید بتونه عدالتو بین اونها رعایت کنه. یه شب منزله این خانم باشید یشب منزله ایشون در بقیه موالدم همین همینطور سلامت بفرمایید خیلی ممنون جمع نگاهی به هر دو زن میکنه و از اتاق بیرون میره مرادی پشت در کشید میداده دو زنم بیرون میاد و مرادی سری میذ توی اتاق افسر نگهبان هر دو زن پشت سر همسر مشترکشون میاد خب شنیدید که افسر نگهبان چی گفت باید با هم سازش کنید. میتونید با هم مشورت بکنید. ببینید من امشب کجا باشم بهتره. پیش تو یا پیش تو با با با هر دو توی سر همسر میکوم چپ شده. بابا. مرد بیچاره شب توی دفتر روی موقع میخوابه اونم به سختی ملافه میکشه روشو میخوابه فرنگیس و شیرین پایین تعداد زیادی پله با هم بحث میکنن فرنگیس بالاتر می... ایستاده. شیرین دو پله بالاتر میستد جدی؟ پس برای شما هم تعریف کرده؟ بله هرچی فکر میکنم میبینم اون تفلک راست میگفت حیوانی داریم پس اون بیچاره برای شما گفته شما باور نکردید اون دائم میگفت که داریوش جمع نیست و زن داره چه صداحه چه دوزای اول نمیذاش من بهش بخوره که حق داشته؟ فریضم بود البته من نمیزمم اگر این داریوش جمع همون خسروه پس شکل خسرو نیست اگر داریوش داریوشه پس چرا مثل داریوش فکر نمی‌کنه، حرف نمیزنه یا رفتار نمی‌کنه؟ منم منم رو میگم این مشکلو فقط یه نفر میتونه حل کنه پروفیسر سائید فرنگیس شيرين توی آزمایشگاه دکتر سائید تو بهشون داده. چیز دیگه ای هم هست که بگم؟ بله. چی؟ یه شوخی حق نداشتیم این کارو بکنید آقای پروفسور. درست. آقای محترم من احساسات شما رو در پایی من چیکار میتونستم بکنم؟ من حتی حق انتخاب هم نداشتم دو نفر اونجا بودن که یکی قلبش رو از دست داده بود و اونیجی مغز شد و هر ثانیه که میگذشت به معنای از دست دادن یک فرصت بود من خیلی خوشحالم که اون فرصت رو از دست ندادم مغزی که من حفظ کردم امروز باعث افتخار همه ماست این مسئل فقط خسروی من شد در عکس شما زنده است انسان چیزی نیست جز مرکز احساسات، ادراکات، عواطف و خاطراتش خانم ما از چیزی اینو رهتا؟ نه بچ به داد برای تقدیش منزل آقا خانم تشیف نداره منزل داریوش جم سه مهمور وارد خونه میشن باطلر تعجب برنده در رو میبنده مهمور ها وسط خونه قرار میگیرن هر کدوم به یه طرف برن پس همین پایین شروع میکنیم مهمور مستقیم سراغ بوفه میری کموده رو باز میکنه چیزی نیست یه کمود چه چیزی نیست کموده پایین رو نگاه میکنه و بسته مواد پیدا میکنه منشی جم سوحان ناخن میزنه با تلفن صحبت میکنه که مهمورین می داکستانی وارد میشه لطپن روزی یه تخبیدی لطپن روزی یه تخبیدی خب؟ بعد سبزیاتوی که خوب گوشی اونجان ولی کسی رو نمی‌فطیدن حالش خوب نیست ما فرق میکنیم خانم چی؟ بعدا می‌فهمیم معمورین به سمت اتاق جنب میرن و منشی ترسیب. کسی رو نمی‌داتور آجام داریوش رو این مبد خابیده چشم باز می‌کنه و مأمورین رو می‌بینه. متعجب می‌شه. بله شما باز داشتید من من همین دیشه بازอด شدم. جناب سرباز خودشون گفتن داشتن دو تا نیست. اگه به خاطر عدم رعایت عدالت اونا هستم ما ارجازه نه که عدالت رعایت به خواهر بیارد کنم دکتر سایی شیرین و فرنگیس رو به سردخونه آقا ده کفشاش ما اینجنه میانتنه بالاتنه صحیح و صالم خوزرهی بیچارهی با رو باشست با مورادیو یوسفی پیش افسر نگه همونطور که که کردم ایشون نمونه کاملی از مرفهین بیدرد تا دیروز سمیه ارزی کارخونه پول پوچی ایشون بود اجازه رو برمی داشتن بران کشورهای اروپایی دنبال کارهای بدبد با سرنوشت هزار نفر بازی میکردن به طوری که کارخونه رو به ورشکستگی رسوندن همین ایشون مراد جان و امروز خیلی ممنون. امروز که کارخونه با همت و تلاش و کوشش کارگرای زحمتکش و هیئت مدیره پرتقال و به سودهی رسیده ایشون سود کارخونه رو یا به ازدواج مجدد با زنهای رنگارایی رنگ کنند رنگ دنهایی بیایی که اینجوری اونا رو باده هوا میدن کنم بلازه بفرماید ده قاهش بگنم شما این بساره میشنسی؟ نه نخیر قربان ولی ما اینها از خونه شما پیدا کردیم میدونی نگهداری این همه مواد چه مجازاتی داره؟ خیر قربان از چه دفعی داری؟ راستش من اش اصلا تا همو قبول داری من فقط قبول دارم که با اجازه شما دیگه داریوش جمع نباشم یعنی چی یعنی همین خودم باشم خیلی بهتره من چه میدونم جم لعنتی چه غلطی کرده دودی بوده یا نبوده اینا راست میگن یا دروغ اگه بگم نکردم نداشتم یعنی جم نداشته شادم داشته چه میدونم اگه بگم داشته شاملم نداشته اما یه چیزو مطمئنم این پودر مال منه و کارخونه با همون پودر کارخونه شده با مدیریت من کارخونه شده نه با هیچ پدر سوخته دیگه ای از جمله این دو نفر ایشو چه ایشون چه میگن؟ ایشون از وقتی که سکته مغزی کردن یک کمی اختراع نواز میگن شایدم دارن نقش باز میکنن بایی نیست، اصلا هیچی بایی نیست خوروان احتوال دوم میشتره و هر حال جرم مسلم اولینش بازنشگاه هم کارگرها توی محبته کارخونه جمع شدن و شعار میدن مورادی و یوسفی احتیال پنجره دفتر نگران آنها رو میبینن یوسفی میکروفون رو برمیدن پرده رو کنار میزن شیشهرم بازون کن زود میکروفون بیار. پرده رو هم بزن کنار بخونه <تصفيق> آقایون آقایون توجه کنید مداله که غیر قابل این کار فساد اخلاقی آقای جان پیدا شده ما هم مثل شما متاسفیم ما هم ناراحتیم اما این کارخونه ماله همه میگین چی کار کنیم امروز چشم امید ممنکت به ما دوخته شده ما نرست کنیم که امید مردم نه امید بشه درسته علابرین تقاضا میکنم هر چه زودتر همه برگردید سر کارتون اگه تا یک دقیقه دیگه برنگشتید سر کارتون برنگشتید سر خیبنت همه تونا اخراج میکنم کارگرا اعتراض میکنن و میوه و چیزای دیگر رو به سمت مرادی یوسفی پرت میکنن اونو هم ترسیدن پنجره رو میبندن و پرده رو میکشند همه چی تو خراب کردید اگه میشه اینا رو دیگه برگردون سر کار صدای اونها رو از بلنگو میشنه من میکروفون باز چقدر وزغرفه تا تا که کشیدی؟ تو تا دیروز که همش بهتا و چهچا میکردی؟ آره بله، مگه سی و پنی صاحب رو که با هزار دوز کلک سوار کردیم و خوردیم بسه نبود، به تمه می‌کنی دیگه به مثل تاکن تا تا تا برامو کار می‌گرد ما که صاحب چه نفت نفت نفتی ها به تو نفتی نه اون همه. کجا خریده بودی اون همه رو حالا خدا رو شکر که تو راه نگرفتننت نه تو وقت آدم خوبی هستی ببینم اون میکروفون باسه باسه آره آره نه این مردم کجا سرکارگر همه رو علیه مرادی و یوسفی میشورونه و به طرف دفتر راه میافت از مرادی و یوسفی میخوان فرار کنن که همه کارگرا توی دفتر میریزن و اون دوتا توی سرزنون میشین قبرستان شیرین سیاه پوش بالای سر قبر خسرو پذیرشه که فرنگیس و داریوش هم سیاه پوش پیشش میان دست گلیار. فاتحه نسار روح خسرو میکن هر سینک دودی گره داروش بلند میشه و اینکشو شیرین و فرنگیس هم با هم پا میشه فرنگیس و شیرین با هم اینکاشونو برمیداره خب دیگه پاشین بریم نه من نمیام چرا؟ میان من شوهرم این زیر خوابیده ولی من شوهرتم من خسروام نه این بدن یا اون بدن چه اهمیتی داره آدم با مغز و خاطراتش زندگی میکنه تو توی خاطرات من همسر من هستی راستش من بیشتر از اینکه شوهر فرنگیس باشم خیلی ببخشید شوهرتون قبول کن شیرین هم منو هم داریوشو خسرو باشه خسرو بریم ماشین به رانندگی راننده راه میفته بره. و از این به بعد فقط صدای خب بعد بگم میشه. که من از هر دوی شما راضیم خیلی هم ممنون میشم اگه یکم به من جواب بدین من در مهمنشم بچا من که چسبیدم به در جا ندارم شیرین جون میشه یکم بری اونورتر این که جان نیست اینا خورده جان دستم چیکار میکنی ببینم اینجوری نمیشه بیچاره مرد قصه ما رو توی اتوبان از ماشین بیرون می نزن. درست جلوی یک تابلوی بزرگ تبلیغاتی پودر تک که یک طرفشو داروش جمع گرفته و طرف دیگرشو خسرو پذیرش و این مرد به تابلو نگاه می‌کنه و در بحران هویتی خودش باقی می Ah, oh, ah, oh و اما عوامل برنامه رادیو فیلم جناب آقای علی حاجی نوروزی صدا بردار برنامه فرشاد آزرنیا، سردبیر و تهیه کننده و بنده که به عنوان گوینده و نویسنده این مطالب در خدمت شما بودم بهرام سروری نشاد تا رادیو فیلم دیگر خدا نگهدار